قصه ها و افسانههایی از گوش و کنار ایران تدوین و پژوهش محمد جعفری قنواتی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده شهرزاد با سلام به شنونده های عزیز کانال هزار افسان داستان این قسمت گشتم هزار و سی ندیدم آدم دو سره روزی بود و روزگاری بود پدر و پسری تصمیم گرفتن برای پیدا کردن کار از ولایت خودشون به شهر ای برند بنابراین صبح زود از خونه را افتادن تا شب راه رفتن ولی به شهر یا آبادی یا دهی نرسیدن پدر به پسرش گفت هوا تاریک شده و اینجا هم پناهگاهی نیست مجبوریم شب رو در همین بیابون صبح کنیم پسر گفت اینجا اینجا بیابونه ممکنه حیوانات دررنده به ما حمله کنن پدر گفت فکر اونش هم کردم موقع خواب پاهامون رو توی پیرهن هم میکنیم. میخوابیم. مطمئن باش. هیچ حیبانی با ما کاری نداره. خلاصه. طبق گفته پدر موقع خواب پاهاشون توی پیرهن هم کردن و همونجور خوابیدن. های شب که پدر و پسر خواب بودن شیری از اونجا رد میشه و بوی آدمی زاد به مشامش میخوره. شیر با خودش میگه به به بوی آدمیزاد میاد باید بگردم و این آدمیزاد رو پیدا کنم و دلی از ازا در بیارم بعد از مدتی گشتن پدر و پسر رو پیدا میکنه اما اما با تعجب میبینه که این آدمیزاد دوتا سر داره این طرف و اون طرف برانداز میکنه ولی سر در نمیاره که چی به چیه با خودش میگه اگه بخوام این طرفو بخورم اون یکی سر بیدار میشه اگه بخوام اون طرف رو بخورم، این یکی طرف بیدار میشه. بالاخره بعد از مدتی کلنجان رفتن، از خوردن اونا منصرف میشه. و با خودش میگه، گشتم هزار و ندیدم آدم دو سره. کانال تلگرامی هزار های افثان. داستانهای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه .me می /me مهران دوستی تی نقطه نشانی وبلاگ ما ام s t i b l o g f a c o m کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی